اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر موفق و معین یه سببات بفرستید تا یه بحث و توضیف به قدمتون بحث ما در اینجاست که در اونجا به عنوان ما مقدمه نوشتم برای فهم کلامی که در گذشته ساده شده چه کار ما همینه دیگه کلام قرآن و حدیث در گذشته ما شده شفاهی الان نیست برای فهم چنین کلامی ما لازم هست که ظهور همون زمان را داشته باشیم این اشاره به همون که گفتیم سیره بعضی وقتا موضوع حکمش مغید به زمان خاصی است یعنی سیره بر این که لباس کفار باشد مغید به زمان خاصی است هر موقع لباس کفار حاصل شد سیره حاصل شد اون موقع حرام اما ظهور باید مربوط به زمان صدور خطاب باشد خب حالا خب از ما همینه قرآن و حدیث ظهورش و اون سیره‌ای که ظهور رو ساخته باید مربوط به زمان صدور اون خطاب باشه بعدن سیره بیاد ظهور بسازه اون فایده نداره حکم نمیاد حکم زیاد اونجا نمیاد خب این مقدمه به زبان برای فهم کلامی که در گذشته صادر شده لازم است ظهور همان زمان برای ما ثابت و احراز شود خیلی خب حالا ما الان قرآن رو نگاه می‌کنیم حدیث رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم برای ما یه ظهوری داره سیره این سیره را میگم که با بحث سیره مرتبط بشه در ذهن. سیره برای ما ظهور سازی کرده است نسبت به آیه قرآن. اِنَّا عَتَيْنَا این جمله الان برای ما ظهوری دارد. چون سیره مردم برای اِنَّا یه چیزی میفهمن. الان عَتَيْنَا یه چیزی میفهمن. کَوْسَر یک چیزی میفهمن. حالا این سیره با یعنی ظهور فعیلی چه الان هست سیره فعیلی چه ظهور ساخته برای ما نسبت به ظهور در زمان همون قرآن سه صورت داره برای ما یا یقین داریم که این ظهور فعیلی چه الان داریم هرچی میفهمی یقینا زمان صدور خطاب یعنی نزول قرآن هم همینو میفهمیدم خب حکمش چیه؟ فی این ظهور اگر یقین یعنی دارید که این ظهوری که ادان دارید این بعدا ایجاد شده و قدیم در زمان نزول قرآن اینو نمیفهمیدن مثلا الان ما فرض کنید که 100 سال پیش در یه کلامی نوشته که مثلا شاه ناصرددین شاه همراهی داشت خب من یعنی دارم منظور از این همراه گوشی همراه دیست چون زمان ناصرددین شاهد گوشی همراه نبود که این همراه به معنی گوشی بعدن جواب شده خب شما حق ندارید اون جمله رو به معنی گوشی بگیرید درست هایست کردید؟ پشتون من؟ <تصفح> پس این ظهور فعلی همراه در گوشی این برای اون مرز حجت نیست این رو هم پس میگه میسن ادامال خود چه خیلی بخش بحث ما که الان وسط رو بزموندیم جاییست که ما الان نفسی داریم که برای ما ظهوری داره و نمیدونیم شاید همون زمان قرآن شاید همون صد سال پیش هم همین مناقل یا نه این بردم معملای جدید رو میداشم اسطلاح هم ممکنه از زمان صدور خطاب تا زمان ما که الان ما زهوری داریم هواست باشید در همه اینها ما الان زهورو داریم ولی خب زهورو به نکنه خود باید, باید اون زمان حالا این ظهور الان که من دارم ممکن است همان ظهور آن زمان باشد. زهوری باشه که اون زمان بوده و این ثابت بوده تا الان نه داره پیدا یا اینکه نه این ظهوری که الان من دارم عقب بریم تاریخ رو نگاه کنیم میریم میریم در یه زمانی این ایجاد شده و قبل از اون ظهور دیگری بوده لذا ظهور زمان صدور خطاب چیز دیگهی بوده این استداهای نقل شده پس من در این صورت سوم در واقع شک دارم در واقعه شک من این است که آیا ظهور به عبارت دیگر یعنی شک داریم در نقل نب... آیا نقل شده؟ نمیدونم چه شده؟ چه نه شده اگر نقل شده باشه ظهور ارمان به لب نمیخواه اگر نقل نب... نشده باشه خب ظهور ارمان یعنی همون ظهور ارمان به لب نمیخواه این شک در نر یک راهی میتونه داشته باشه کلن در شک ما در فیخ و اصول چه میکنیم از اسالت استفاده میکنیم کلن اسالت از اسالت استفاده میکنیم حالا در پاسخ به این بحث شک اصولی ها میان جدیدی ها دیگه اینا بحث ها قدیمی نیستیم میان میگن که اگر ما از اصل عدم نقل استفاده کنیم ببین به درد میخوره به من بگیم ببینم به درد یا نه اصل عدم نقل بله دیگه اصل عدم نه یعنی این ظهوری که داری شاید نقل شده باشه قبلا چیز دیگری بوده این شایع رو با این اصل عدم نقل نقل شده. میگیم نه اینشالله که نقلی در کار نقل دست. اگر در کار نبوده یعنی چه شده است یعنی این ظهور همون ظهور زمان صدور کتابه همون ظهور زمان رسول قرآنه امروز تصادف شده میدونه امروز تصادف نشد <تصفح> خب آبا چرا دور نجستیم ما باید دار بزنم خود نعزیسترم بیاده آه. نه ترسید کای ندارم دیروز پول بود امروز پول سهش نیست. نه دادیم نه نه ساخته. این خیلی خوب. چی؟ آره باید کن وارشون دیروز نه بودنیه دیروز یه سات دیروز آره. آره، این وسط این بحثمون بدیریم من چون هر روش نفرات جدید میشن، مجموع میموندار توضیحات تکراری بودم تا شکل این بحث کلاساتون یه صبح پیدا بکنه، معلوم بشه چیا میان، چیا نمیان، دیگر نه؟ خب، بله؟ آره، برای یه مشکلاتی هست؟ خب، آقا چی داشتم بروختم؟ ببینید؟ من حالا یاد این دیو立马 تاثیرشینه هوا، هوا صدا فرداشه. من ظهوری رو الان دارم. شک میکنم آیا این ظهور بعد سر و کلهش پیدا شده؟ اصطلاحاً چی شده؟ نه، نه نشده. یا نه شاید نه نشده. این ظهور همون ظهوریه که زمان قران هم بوده. اینجا یعنی نه رفت داده یا نه پس اینجا میگه که عدم نقل یعنی اگر زهوری علا داری همونه چه قدیمه بود ندلی نشده این همونه خیلی خب، این از عدم نقل رو اگر بپذیری، حجیت ظهور الان من برای فهم قرآن 1400 سال پیش ثابت میشه روشنه؟ به نظر خیلی روشن و شفاق اما اگر اصل ادم نهر را نپذیرم این زبور الان من برای الان خود چیز داره زهور ایجاد کرده برای زمان قرآن را که دیگه من با چی میتونم احراز کنم این کلی به زمان نزول قرآن نمیتونم بزنم فقط با اصل ادم نهر میتونستم که اونم قبول ندارم پس اگر قبول کردید خوبه قبول نکردید نه حالا در مورد اصل عدم نب من این رو جدا می نمیستم دارم اصل عدم نب این یه ذره توضیح بدیم به بچه دیروزم گفتیم دو مبنا در این اصل رجوع دارد مبنای اول خب در قطعه می و مبنای دو با. چون اینا رو خیلی کار نگردی دیر مدار شاید سختن باشه اصل ادم خودش دو گروه علمان هستن اونا چه داهلن یه چی اصلا اصل ادم قبول نداره یه چی قبول داره اونا چه قبول دارن مرمان اول اینه ادم نه در اصل معنای لغوی ده و در ظهور نوعی همینقدر که نوشتم کسی از متاجع شده مطلب رو اصل معنای لغوی با ظهور نوعی چه فرقی داده؟ عدب نقر زایه زور اهم از من آها اهم یعنی چی؟ م. م. یا چون یه مثال زدیم قبلا گفتیم م. لا بیعه اگر حق لفظشو نگاه کنیم یعنی چی؟ یعنی بی اصلا نیست م. جنس بی نیست. حقیقت بی نه فوشه این معنی روحبی بعد گفتیم همین نابعه اگر شما با قلعه رو اینها نگاش کنید اون سیره که در موردش هست این رو در شون که لا یعنی لازوم للبع یعنی این بالایی نفیه اصل بیه این نفع لازوم بیه خب چه فرقی بین بالایی و پایی هست؟ چه فرقی بین بالا هر توش یک است. اگر لفظش لا بیا هستش. اون لا به ماهیلا وجود داره. نفی ماهیت و اوجیز ایه هست. اما لا بیا نه بزرگ چه فرقی با هم بالایی با پاییو چه یک لفظه برای یک مردم هست این برای هزار سال پیش این برای هزار سال بعد است که یکه فقط بین این دو تا فرق اینه در نابعه اینکه نفعه اصل به رو فهمیدیم. در اینجا ظهور حاصل از معنای لغربی یا بگم معنای حق لفظ لابعه به قابل نفل جنس و از صدور برای نفل چیست؟ بیا کرد پس به این جنسی خاصیست نفل اما در این لابعه ای که لزوم می‌فهمید. نه نفل جنس به نه نفل خود به در اینجا ظهور حاصل از معنای لغوی به اضافه لابعی که نفیل لزوم میکنند شما با استفاده از قرائن نفیل لزوم کردید گفتید خود بی هست خود بی باطل نشده لزومش باطل شده لزومش رفته این ظهور حاصل از لغت بیضافه قرینه اون قرینهه میتونه قرینهی مبتصره یا منفصله باشه. که این مبتصره میتونه لفظی باشه یا لبیه. که این مبتصره لفظی مثلا میتونه سپسیلی بیه لب بیا لازم بی لازمینه لری برجا مینه لاسی مبتصره. که این لبیه مبتصره میذارم. لابیعی که به همراه اینو گفتید لابیع به همراه سیره سیره زهورساز اینو گفت چند اینو گفت لابیع به همراه یه سیرهی که برای ما زهور میسازه این زهور رو میسازه که نفع لزوم است نه نفع جنسی بله ما کلمه رو معنی میکنم خیلی خوب پس ما الان جنبه نمی عدم نقل ممکنه شما قائل به این مهمه بشوید بگید عدم نقل چه در اصل معنای لغایی و چه در ظهور نوعی ظهور نوعی یعنی نوع مردم این رو ظهور نوعی یعنی این رو میفهمن فقط به لغت نگاه نمی کنم بچه قرینه هاش هم نگاه کنیم نوع مردم اینا رو میبینن خب اصالت عدم نقل در همه ایناست یعنی چه معنای لغویش و چه معنای حاصل از ظهور نوعی حاصل از قرار ها هیچ کدوم اینها یعنی یه لفظی داشته باشید لغتش یه لفظی داشته باشید ظهورش حاصل از قرار هر کدوم بخواد باشه نقل روخ نمیدهد مبنان اول اینه خب اگر این مبنان رو قائل بشوید این ظهور حاصل از سیره که برای ما الان هست دقت کنید برمیگردیم وصل وصل اگر در عدم قائل به مبنای اول بشمید که خیلی وسیع گرفته گفته هیچ ظهوری نره پیدا نمیکنه چه حاصل از حاق چه حاصل از قراره. اگر این رو خائل, خائل حالا من شک دارم این ظهوری که الان برای من حاصله است ظهوری که الان برای شاید در گذشته در زمان قرآن چیز دیگه ای بوده در بینراح عوض شده این به ما رسیده اون عوض شده به ما رسیده این نمه اینو رو میکنه یا نه؟ نه رو نفر میکنه یا نه؟ و رو میکنه دیگه میگه آزان الان شما با استفاده از سیره یه ظهوری داریم هر چی بوده همین بوده نترس قبلا چیز دیگه ای نبوده یعنی اگر شما برعکس عقب عقب برگردی قح قرار بری تا زمان دوران برسیم میبینی همینه نطق نشده است چرا چون این ظهوری که علاداریم حاصل از این سیر است ببینید ما فرض نداره که ظهور این ظهور فیدی حاصل از سیر است این متصده لقبیه زهوری که علم داریم حاصل از قرینه متصده لقبیه است و اونم سیر است نکنه در قرن هفتم این ظهور ایجاد شده این سیره ایجاد شده میگه از دردم هنه خیاله راحت میکنه احراز میکنید که بجوری. اما اگر معنای حقوم رو بپذیریم چه میگه اصل عدم نقل مختص به فقط معنای شما ص دمنقل مختص به معنای نوغوی فقط و شامل ظهور نوعی حاصل از نمی شود خب اون موقع ما اولاً چی داریم؟ زهور نوعی حاصل از قرائل داریم در این مورد میخوام از دردم نه کنم؟ میگه نه اون دیگه میشه لوگت اگه میخواه آره لغت عوض, عوض نمیشه لغت صبح دارد لغت در طول 1400 سال عوض نمیشه که اما زهور با استفاده از قرائلان چرا؟ این عوض میشه پس مبنای دو اجازه نمیده ما زهور روی رو, رو برای ش در نظر بگیریم میگه شاید در بین راه عوض شده باشد خب این دیگه خراب میکنه ما نمیتونیم از این زهور فعیلی زهور زمان بران رو اثابت و خب عبارت رو ببین تمام کنی به برات رو از همون و اما میخونم خدا رو نتو از این بس. در میان یه روز داخله و اما بسم الله الرحمن الرحیم و اما از احرازنا صبوت از فی اصلنا صبوت سیرت در ما هست روی سیره بریمشه زبورساز اون سوستان که نبودن اینا رو براشون احتمالا مبهم باشه وحتمننا معاصرت معاصرتها لهو احتمال بریم که این سیره همون سیره که با زمان خطاب مواسه بوده ظهور الان همون ظهوریه که زمان خطاب بوده فیوم چه نو خب در مثلا نفر میشه که خب اینجا شک داریم ظهور اون زمان ثابت نمیشه که ولی تو یه راهی ما ارائه میکنه میگه دوم که قول به حجیت ظهور منقحه ها امکان این هست که ظهور منقحه به این سیره را ما باهاش قاهجت قائل بشیم بگیم این ظهوری که الان با حاصله این حجت هست نسبت به اون زمان رو حجه بریسیم نسبت به ظهور اون زمان بناهن عدم بناهن بقیه شما قائل به اصالت ادم نرمشون بناهن الان ادراج هاز از ظهور تحت کب را اصالت ادم نرم فلوغه خب ادم نرم فلوغه حالا خودش دو مرنا داره طبقه این مرناش یوم کنر کب به اون مرگا شیده بر یقال این المراده به اصالت ادم نقل هو این اول مرگا ادم و مطلق ظهور نوعیش ادم هو ادم و نقل مطلق ظهور نوعیل کلامه ظهور نوعیل کلام یعنی ظهوری که از هر راهی میشه حاصل شده باشه خود لغتش قرینه متصلش قرینه منفصلش قرینه متصل لفظی غیر لفظی هر چه باشه بلاخره یه زهوری نه، نه، نه، نه، نه، این ظهوری حاصل شد نعل مپذیرفت این همان ظهوری است که 1400 سال پیشه البته گفتنی رفت سخت ها یعنی قهرمانی الان با قرارون اون زمان یعنی واقعا عوض نشده در این 1400 سال همین 10 سال پیش تو عالم چقدر شده. بیش سال پیش دار حالا من شما باید خب این بیش سال اخیش یا این یکی دقیقا دو اخیش دورانو پیش رفت و دوران ارتباطاتو این هاست این سرعت تغییرات صدها برابر بود قدیمان میدید مثلا دو هزار سال گذشت بشر مثلا آتش رو افتراکت هست این در دو هزار سال یه افتراکت چند هزار سال میگذرد که داخل مثلا آهن آهند کشم میکرد چند هزار سال میگذشت چرق اختراع کرد هر اختراعی چند هزار سال فاصله داشت هست دارد اما الان نه الان هر روز اختراع جدید چیز جدید هست و اینها حال میخوام بگم که قدیم ها اون هزار سال قبل هم درست ممکنه تفاوتهایی در ترین و اینها حاصل شده باشه که به ما نرسیده عوض شده باشه اصل عدم نه بخوام سخته. حتی تو لغتش هم بپذیریم تو این ظهور نوعیهش سختره احساس میکنیم از همه سختر نیچه عدم در ظهور نوعی رو بپذیریم یعنی <متحد> قریب هر هرچی علام بودن همون هم بودن خب حالا مراد بسالت عدم هو عدم و نقل مطرق ظهور نوعیه لن کلام سوا و نکانه علا اساسه لغت لغویه تون رو نمیشن لابعه دلت و نفیه جزه اگر این بود هم نمی شود اما قرینه نوعیت متصلته یا واقع نوعی متصله چرا قرینه نوعی متصله میگه؟ چون میخواد راه برای اون باز بشه سیره گفتیم قرینه متصل است دیگه لفظیتا کاند حالا بیون لفظیت چمه سیره رفتن ندار؟ ام لبیتا چست سیره این سیره هم دوستان که نبودن داشته باشیم ما توی این کتاب توی این بحث ها ظهور رو حاصل از سیره میدانیم اصلا ربط این بحث به بحث های اینه ظهور توسط سیره محقق شده است و ما هم در اون قسمی هستیم که سیره محقق نو است منحقق نو است سکوته خب نعم این نعم داره اینجا رو میگه رو تخته نمیشنم مبنای دوم در اصل ادم نقل رو میگه نه بناهن الاختصاص اصالت ادم نهل به مکنون لغوی یعنی قایل بشه آقا داریم ولی در مکنون لغوی یعنی معنای لغت در طول تاریخ تقییب پیدا نمیکنه کنه صبح داره اما ظهور حاصل از قراین اینا رو نبیتونی بگیم قراین عوض شده اینا اگر اینجوری بگیم موقع لاحجیتا لحاظ از ظهور آقای اسکرین، این هاز از رو بگویم، یعنی کدوم تو فلاه، لاه هرچیته له از کدوم زور؟ کدومی داری؟ کاش پنمسید، پنمسید؟ دارست. زور، اونا هم ناقص گفتی. حالا من تاکنون ولی قبول هم این بردارا قبولی برمیسه زهور نوعی فعلی این فعلیش هم برسه الان یه زهور نوعی داریم فعلی حاصل از این باشید حاصل از سیره سیره, سیره الانی این ظهور نوعی فیلی الان به درد ازان چهارسد سای پیش نمیخوره لاحجیت هم اگه نمیدونید روش بنویسید. لاحجیت یعنی یعنی برای فهم خطاب گذشته اجیت نه تا این یعنی خیلی چرا این حجج نداره برای ادله احراز مواصلت این چون این این زولی که الان داریم مواصله با زوانت ها معلوم نیست باشد شک کردیم اصالت ادم نرلم نتونست برای ما کاری بکنه چون مبنامون تو اصالت ادم نقل اونجوری جلوگوشات نبود وسی نبود خیلی خب اینجا یه این نقطه بذاریم این بحث تموم شد و همین همین حالا یه بحث دیگری الان اینجا پیش میاد اون اینه چه این لفظی که الان جلومون هست این حدیث یا این آیه قرآن خودش یک ظهوری الان داره خودش الان یه ظهوری داره ما احتمال می دهیم که این لفظ در همون زمان صدورش قرینه ای داشته باشد قرینه داشته باشه چه اون قرینه به ما نرسیده مثلا سیره ای بوده است که این لفظ رو در یه معنای ظهور ایجابی کرده براش و الان اون قرینه شاید به ما نرسیده احتمال قرینه در این لفظ داره خب آیا این لفظ الان بدون توجه به این سیره فعلیش دقت کنید این بس دیگریست است اون بس همشه به نظر دیگه کامل کامل توضیح دادم هیچ مشکلی و ابحامی توش نورد میشه الان همین لفظ به خودی خود سیره الان رو بزنم چنار خود لفظش بدون توجه به سیره الان که براش رو غوره ایجاد کرده بدون توجه هم. یعنی که خب سیره الانی سیره فعیلی این قلیلی محتصل هستیه اونو بزن کرانش قلیلی محتصله لبیه فقط همون لفظش پیمونه برات خوشکو لفظش اون لفظش برای من میتونه حجت باشه میتونه حجت باشه لفظ چی؟ لفظ بله دیگه خود اون جنب مثلا من بگم, من بگم چه آقا این ای ناکل کاؤسر کاؤسر در خیر کثیر میکنه از کسرت میاده کاؤسر فواله اما دیمیدونم زمان برانم هم همین بود یا نه اصلا دردم نخدم به دردم نخورد حجت نیست این ظهور الان که سیره الان برای من این ظهور رو کرد به دردم نخورد گذاشتم جنار لا حجیت را خورد نمیتونم اون حجیت ظهور الان رو به اون 1400 سال پیش برگردم خیر خب تمومش حالا صحبه اصلا که خودش از جهت لغوی خود معنای لغوی رو حق لفظش رو نگاه میکنیم حق لفظش رو اون چی؟ اون آیا حجیت داره یا نه با قطع نظر از این سیری فعلی اگر اونم حجیت نداره شاشه هستم مهمت داره باشکون ما که نمی ترسیم ما به خاطر این عوارس نمی‌تونیم از قول حق دستفر داریم نتیجه حرف ما این میشه که قرآن مثلا اینجاش مجمن میشه شه به درد به من چه نخوشم تصیل من که نیست من دارم حقیقت رو چشمی کنم من به واقع می برسم. اگر قرآن برای من حجت نیست خب نیست دیگه تمام چند. خب حالا این لفظ ایشون میگه که احتمال قرینه برای این لفظ در اون زمان میدید یا نه شما الان به خشک و خالی لفظ نگاه میکنید دیگه آیا احتمال میدین که این لفظ در اون زمان یه قرینهی همراهش بوده است و تبرای اون قرینه ظهور نوعی برای اون زمان ایجاد شده بود چون قلیه بعدا به ما نرسیده احتمال میدید؟ خب. خب نه چرا نه؟ چرا نه؟ بگو اگه این رو اثبات کنید یه تحوالی در رسول خیلی خوبه بگو بگو چرا؟ احتمال قلیه هست نمیتونه نفش کنید همین احتمال قلیه باعث میشه که همین خشک و خالی لفظم هم به دردمان نخوره. پس نه لفظ به ظهور نوعیش که الان داریم به درد میخوره و نه لفظ خوشک و خالیش به هیچ دردی نمیخوره به درد. چی مجمل میشه دیم؟ مجمل میشه بله دیگه مجمل به درد نمیخوره رو همین حساب میگیم که آیات و قرآن بعضی هاش مجمله بعضی هاش مبینه این ها از بذار تو لیست مجمله پس این وحی نعزه یه بسه جدیدیست اون هم میگه خود لفظ خوشک و خ به درمی یا نه؟ وحینه ازن فا این قلنا من کشنار روش بینویسید این یه بحث متفره است بر این بحث قبلی بحث متفره بر بحث قبلی که این رو تو هم یه وقت نبینید قاطی میشه خیلی خوب لفظ خوش بخالیش فا قلنا با این احتمال القرینت المتسلته یوجه با اجمال الکلام احتمال قرنه متصله روش یه توضیح میگم بنویسید نمیسید. بارا این مدار سخته. این کتاب یه ای مقدار سخته. یعنی باید حسابی کار کنید تا قشنگ توش بتونید موفق ازش در بیاید. یه خود شل بگید و با قیبت و تاخیر و بحث نکردن و مطالع نکردن این کتاب میمونه رو تون نمیتونید نمره هم خودش تا نتونید بگیرید زمین که یه بدی هم داره این که, تا... که بحث سیرش پولانیه یعنی الان تا اینجا کار رو اگر نفهمیدید تا 100 صفحه دیگه نفهم این اینچون چیست که این بحث تو تموم شه بریم بحث وردی الان, الان بحث سیرش تا صفحه 127 طور میکشه پس اونا که خوب نخوندید پیشنان بکنند من صوتارو رو گذاشتم. اون سوتا رو یه بار گوش کنید خیلی هم نیست ما هم خیلی آروم کنیم بگم چون نفرات هم ارز عوض میشه ما تا اینجا رو جهران کنید ادامهش هم خوب بخونید خب حالا اینجا این رو بینمیسید احتمال قرینه یو یوده با اجمال کنیم رو قرینه متصل بینمیسید که همان سیره در زمان صدور خطا باشد سیره در زمان صدور خطاب سیره در زمان صدور خطاب هرچی یعنی اون زمان که این لفظ بود مردم از خوشک و خالیش معنی نمی یه یه ای به این چسبیده بود با اون معناش رو میفهمیدن خب اون سیره به ما نرسیده و این احتمالش چون هست دیگه اون لفظ خوشک و خالیش هم ما نمیتونیم بهش تمثب کنیم لعدم جریان اصالت عدم الغرین. ها حالا شما میگید که آقا ما یه اصلی داریم الان جام شکه دیگه شک میکنم آیا قرینه اون زمان بوده یا نه اصل برای همین جاست دیگه برای همین جا اصل ساختم اصل و عدم ال... اصالت و عدم برای همین دیگه اصالت عدم قرینه اجرام کنیم بگیم انشالله اون زمان ای نبود خب به این میشه جواب داد که بنده خدا آخه اصالت رو هر جا که اجرا نمی که اصالت و عدم القرینه اختصاص به جایی داره که شما طرف باش گفتگوی رو در رو داری مثلا ببین الان من با شما حرف میزنم. میگم برو گوشت بخر قرینه نمیارم که گوشت چی درسته خب میگم مخلقه دیگه یاشار انصلاف داشته باشه فقط به این گوشت که میگم برو بخر انصلاف گوشته گوزفند دارم انصلاب به گوشت اگر من گوشت شطور میخواستم باید میگفتم دیگه شما وقتی میرید گوشت گوزفند و تو راه میگید که نکنه گوشت شطور میخواستی بعد تو دراتن میگید که نه اگر گوشت شطور میخواست میگفت نگفته پس نمیخواد احتمال این گفته باشه نه. احتمال اینم هم که اگر گفته باشه بب... به من میرسید دیگه احتمالش را نفتی میکنید اصل ادم قرینا اجرا میکنه اما نه اینکه الان من نسبت به 1400 سال پیش این اصل ادم قرینه و اینها رو اجرا کنه اینها اینقدر سخته پس احتمال بله احتمال دیگه چهجوری باشه به این احتمال اعتماد نمیکنه میگن شاید قرینه بوده به من نرسیده میگه نه تو من حواسم بود اگر میخواست بگه تو این فضا میگفتیگه اونجایی که مزنه قرینه است من حواسم بود آره تو این مورد اما توی 1400 سال پیش من از کجا بدونم قرینه نیست احتمال قرینه پا بر جا میبونه نمیتونه نرفش میتونین؟ نمیشه خب همین دیگه اصل ادم قرینم انقدر زور نداره اون رو نرفش کنه تا نتونست دیگه اون کلام به خاطر اینکه قرینه شاید بوده برای ما خودیت میدان نمیکنه کنه همین میگه بایی که لدم جرعان اصالت عدم القرینت لدف حاضر احتمال که بنویسید ؟ احتمال قرینه 1400 سال پیش قرینه در زمان گذشته رو نمیتونه نفت کنه یعنی این بالاخره هدو حد حدود داره دیگه تا یه جایی بورد داره بیشتر از اون نمیسید لم یکم حالا که اینجوری شد احتمال قرینه متصل هست از سالت عدم قلینام کارایی ندارد پس اون موقع لم یکن ما و ظاهرون من دلیل به قطع نظر انحاز سیرت هجتن ایزن در اون صورت این لفظ خشک و خالیش هم بده نمیخوره آن چه که ظاهر است از این دلیل از این لفظ با قطع نظر از حازه سیرت حازه سیره روش بنویسید یعنی سیرهی که الان بر ما ظهور ساخته بود قطع نظرم بنیسید یعنی لفظ بدون این سیره جدید لفظ خوشک و خالی. اینم دیگه حجت نیست به خلاف ما ازا قلنا به مقالت مشهور من جریان ها لدل احتمال مذکور برخلاف اونجایی ای که اینجا دیگه حجت میشه اگه چیزی باشه حجت به خلاف ما از قولنا به مقالت المشهوره من جریان ها مقاله مشهور یعنی قول مشهور این چی بود من بیانی است که این باشد جریان اصالت ادم القرینه لا در احتمال المذکور هنگام یا نزد اون احتمال مذکور یعنی مشهور قائل بینن که نه تو اونجا هم اصل ادم قرینه ثابته است اسالت و عدم القرینه در اینجا هم ثابته لزا میان میگن که اگر آیه قرآن به شما رسید حواله قرینه رو نگاه کن اگر قرینه ندیدی بهش عمل کن میگه بابا جان شاید قرینه باشه میگن اصل عدم قرینه میگه با 1400 سال پیشه روی ابن بود پس مشهور قائلین که اصل عدم قرینه اینجا جاری هست اگه اینو بگید خود اون لفظ بدون لحاظ سیره الانش ها چون گفتیم سیره الانش ماله الان معلوم نیست اون زمان همین باشد خود لفظ خوشک و خالیش برای اینا حجت میشه تراجع داشت به خلاف ما حسابان اونجا جلوش بنویسید در این صورت در این صورت لفظ قرآن و حدیث حجیت یابد. البته به قطع نظر حاضر سیره یعنی که این سیرهی ای که الان داریم رو باید بذاریم کنار چون اون معلوم نیست در اون زمان بوده باشد حالا یه لحظه برگردید چند خط بالاتر یه چند خط بالاتر برگردید همون خط دوم از همین صفحه و علیه فین علمنا اینجا میدونیم این حجیت این ظهور الان همون ظهور نزول قرآنه خب این معلومه حجت و این علمه خط دوم به تأخره ها میدانیم این ظهوری که الان هست این بعد ایجاد شد قدیمان نبود خب اینجا هم این ظهور الان دیگه حجت است روشنه این که اینجا نوشتم خب این حجت هم, هم, هم, هم. حالا وقتی توی این فرض وقتی ظهور فعلی بعدن ایجاد شده در فهم قرآن به درد نمیخواه حجت نیست حالا همین لفظ خوشب و خالیش چی منو ببینید یعنی همین بس که الان تمام شد این بس اخیر اینو تو اون فضای دوم یقین داریم ظهور لفظ ناشی از سیره است که بعدن ایجاد شد زمان باران نبوده خب اون موقع پس اون ظهور حاصل از اون سیره به درد نمیخوره چون بعد ایجاد شد خود خوش که خواهی اون به در میخوره یا نه؟ خود لفظ, خود لفظ. خود اونجا ببین این سیره ما یقین داریم یقین داریم اما تو اون سه شک داشتیم شاید این سیره که ای هست قبلا بوده شاید نبوده. اما تو این سیره دوم یقین داریم این سیره که الان هست بردن ایجاد شد. لذا اون لفظ خوشک و خالیش میاد هجته. با قطع نظر از سیره فیلی. این عبارت رو من گذاشته بودم که اینجا روشندتر میشه. ببینید عبارت رو نگاه کنید. و این علمنا به تخفر سیره از اون زمان صدور. فلا اشکال لفی. عدم حجیت هاز از ظهور. این که و فی حجیت ماه و ظاهر من دلیل به قطع نظر انحاظه سیره یعنی این دلیل رو سیره فعلی، ظهور فعلی که حاصل از است این بذارش کنار، خود خوشک و خالی لفظ رو نگاه کن این یه ظهوری داره دیگه، سیره رو گذاشتم کنار، خود لغتش، لابعه خودش اون میگه حجته، چرا؟ چون اینجا یقین داریم، این سیره بعدی بردن اجاد ای شده این مزاحم نیست، مشکل نمیکنه. اما تو فرض سوم احتمالی بود شاید اون موقع باشه شاید نباشه ضمن اینکه احتمال ال... احتمال قرینه رو هم با اصل عدم قرینه میتونیم در اونجا رد کنیم طبق نظر مشهور اولواتا خلاصه اینکه دلیل در در نیست نه. بالا رو میگم لا اشکا ببین و این ال... اینجا رو میخونم و این علم به تاخوره ها انها تاخوره از زمان اولا فلا اشکالا فی عدم حجیت این ظهور چون الان ایجاد شد و فی حجیت ماه و از ظاهر حجیت همون لفظ خودش مجرد لفظ حجیت ماه و ظاهر یعنی توی حجیتش اشکال نیست حجت به قطع نظر انهاز سیده این جمله پایین این جمله پایین گفته این جمله که پایین گفت در مورد مسئله شک اون که الان خوندم براتون بالا برگشتیم این در مورد یدین به حصول سیره در زمان بعدیست است پسا جان اینو جمع بندی اگر شما یقین دارید سیره بدن جاد شد خب این سیره به درد می حجت نیست خود نفسه خوش چی میگه اون حجت اما اگر شک دارید که سیره بدن جاد شده یا نه اینو با اصالت عدم لرم درست کنید 5 سالت عدم لا میتونی درست کنید لفظ و خالیش هم به شرط اینکه اصالت عدم الغیرینه رو بتونید اجرا کنید به درد میخوره نتونید اجرا کنید اونم به درد نمیخوره موارد اول گفتید که وجد نیست خود ظاهره مورد اول یعنی اونجا که غین به یعنی اونجا که اصول سیره بعدی داریم خب خب گفتید که لفظ ظاهره و خالیش معناش وجد نیست بله چون شک داشتیم حالا خب؟ جنبن از همین بود که عرض خیلی خوب وقت تموم شد. شد. شد. شد اگر یعنی داریم این سیره بعد ها ایجاد شده اولا اون سیره اون ظهور نوعی فیلی که به درد هم چون بردن جا شده خود لفظ خوشک خالیش ولی به درد بخوره چون این سیره مزاحم اون نیست که این بردن ایجاد شد سیره خب همون زهور نوعیش حجته دیگه اون چرا خودت عذیت بکنی؟ اون که گفتیم حجته اون خود زهور نوعیش الان داری چون یقین داریم مال همون زمانه اون حجته خب تلاوت ببشه است اللهم